امروز صبح هوا سرد بود. بله، صبح نیشابور خنک و دلپذیر است. بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند. چرا؟ چون میخواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند. امروز به کجا میرویم؟ به آرامگاه اتار و خیام میرویم. خیلی خوب است. من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم. آرامگاه کمالالملک نقاش ایرانی و یک امامزاده هم آنجاست. بعد از ظهر چه کار می کنیم؟ دوست داری به مسجد چوبی برویم؟ خوب است این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد